مادر لیلا و بهرام قرار با گرفتن وام مسکن و خریداری یه خونه بچه رو از دردسرهای های خورخور نجات بدن. اما اجوزه که بیرون از شهر زندگی میکنه و نمیخواد اونها روی آرامش به خودشون ببینن، پسرش گنجور و وادار میکنه تا پول اونها رو بدزده. بچه ها تصمیم میگیرن با فروش عروسک خودشون، پول خونه رو فراهم کنند اما گنجو پیش دستی میکنه و عروسک ها رو هم میدوزه لیلا و بهرام در تعقیب گنجو به خونه می میرسند. اما به دست گنجو گرفتار میشن عروسک ها به کمک لیلا و بهرام میان و اون دو رو نجات میدن وقتی دوباره گرفتار میشن پلیس سر میرسه و اونا رو نجات میده خوره به اون شکم این چقدر دارم بگم پاشو برو دنبال کار تو زدیدیم اینقدر بیار موسیقی همه سر کارم که دیران پول بیس شریف بای هر اونجوران پول میشوره اله پول میشوره <تصفح> گوشت بارم گو پیرهدم میخواب برم باید بزنم گوشت بارم گو پیرهدم میخواب برم باید بزنم میخواب برم باید بزنم در گیر میافتیم Я тебя диктую, блядь, блядь, блядь, блядь. Хмм. Эй. Ха. Поначалу. Хмм. Это конечно такая тема. بلایشو از خود دفع کن بوزینه بلایشو بلایشو بچو به در راسی آقای کارگاه کجاست؟ داداش کارکارو دستگیر کنه. بریم هدف به کمک ما احتیاج داره. دیگه کارت تما. اینجا پارکت میکنم بوزی خاطر بیان بچه بیان بچه بلاخره گیر افتادی تا به سزای اعمال بد خودت برسی موجودی عجیب به نام پاتال از داخل یک کره جغرافی بیرون میاد تا به جبران محبت وحید آرزوهاشو برآورده کنه به کمک نیروی شگفتانگیز پاتال آرزوهای وحید و خواهرش و دوستاش برآورده میشه وحید به جای پدرش به اداره میره و پدرش به جای اون میره مدرسه مادر دخترک کوچیکی میشه و شیرین جاشو میگیره. آمال و آرزوهای کوچک. <تصفح> اگه گفتین کی بکیه؟ به طرف نادری حمله! چه نکردم یه نفر؟ بچه چگی رو بردی؟ از کی ترسی؟ من اینجا <تصفيق> اسمم پاتاله پاتال؟ <تصفيق> <تصفيق> چی؟ خنده تو میدم. نه من چی نگفتم من آمی جونم کنم که همه چی صدا <تصفيق> بزشه. هر چی تو باج چه حرف یا نوازش و آرزوهای کوچک نیافتی عجیب عجیب ترش هم ببینید کجا دقیق می پاتال و آرزوهای کوچک شما نباید نکشید چه چه پاتال و آرزوهای کوچک یه گنده از توی توم بعد جو سال یه خر مگه تو من آره من این کوش من... به من چه و این این چیا بازی میکنن منصور شاپمنش مامان به قارون ماما. در بیا یه یه دو سکون دی بده بموزان چیا میان احمد آقالو حمیدرضا مرادی علی آقایی علی رضا رئیسی شراره مدنی اینم خودمم پاتال پاتال و آرزوهای کوچک کارگردان کاری از خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان. پسال و آرزو های کوچک. دکتر رضا کمالی با آزار و تنبیه فرزندش سینا میخاد از اون دانش آموز ممتازی بسازه. روزی سینا از ترس پدرش به درون ماشین لباسشویی مرموز خونه پناه میبره کسی توضیح کمالی رو که چه برسر فرزندش اومده باور نمیکنه و اونو توی بیمارستان بستری میکنه. اما او فرار میکنه و در موقع فرار به درون ماشین لباسشویی بیمارستان میفته. اینجوری مگه نگفتم نمیخوابی میشینی این رو حفظ میکنی. این حفظ کردنه؟ چی شکایت شکاعت کنم؟ یک شما بودم، یک شکاعت رو شما؟ خیلی ساده. بگو افغانستان کجا قرار گرفته مشرق مجرق شما یکی از سنگ سرین و بیگذشترین پدرهاست پدری که بایش کجالت همه پدرین خوب و مهربونه که چیده که اون به بچش میزنه اگر به سنگ میزد نالش باسمون میرفت هیچ شده بگه بخنده بازی کنه یادم نمیاد بیشتر میگه خطم مواصله ندارم یه روز دیدم به مادرم میگفت اگه کار کنم پررو میشه متهم محکوم است که بیتو سال در زمان دقا بگه و ف بی اگر این زمان قدم بودم؟ وای بزرگ وای وای وای وای بوی وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای وای این چی داره میگه میگه زن داشته چی شده باز چه خبره آقا جون الهی قربونتون برم شما زنده ای؟ ایوان دا چه منو عذیت نکنید خیلی دلم براتون تن شده بود اگه بدونین چقدر سر قبلتون گریه کردم. این حسن و گلدونه به قصد پیدا کردن پدرشون از پرورشگاه فرار میکنند. اما جستجوی اونا به نتیجه نمیرسه و خسته و گرسنه به گربه های ولگرد کوچه و خیابون برمیخورن گربه ها به امید اینکه اگر پدر بچه ها رو پیدا کنند به وضعیت و موقعیت خوبی دست پیدا خواهند کرد جستجوی گسترده ای رو آغاز میکنه اما وقتی سرانجام پدر حسن و گلدونه پیدا میشه با بیمهری او روبرو میشه. چون قبلا توسط مستخدم منزل پسر و دختری به عنوان فرزندان گم شده او به خونه راه پیدا کردن اما سرانجام حقیقت آشکار میشه و گربه ها هم جایی برای خودشون پیدا میکنن خویشت را باشم ببی چه خوب صد می‌زنه باصد یه زامبرکه قصره دور می‌گونه و لباس بولاد دید تو سرآب ابرد دارا به بولاد دید تو سرآب ابرد دارا به جا دعوشت هست دام جوری تو دادش ده بابا رَبولا دیدو سرا ابیر تو را باب کن تا گوشه هست وجود تو کاش ده تو به خانه گونفره عظیم مری با عظیم مری ولی داور دویی بره جان و کا بره قوزه دخور گلدونه جل چشاس باشه به آسفون که دار بیره عبر سیاه پیدا میشه صورت ما سر با فیره با مار بیاد با خیار بیاد بازم که شا خونه خانه گشون بری عجیل بره خونه خانه گشون بری عجیل عروسیه آشدی کنون رو بوزیه به به تو کوچه ها تناخونی به زنو بکوم و بهبونی باهار بیاد خوش خبره قرصه رو از دلی بره تو کوچه ها تناخونی به زنو بکوم و بهبونی هر جا پری عروسیه آشدی کنون رو ببونی. آختم وازان کربلایو شو آها در این کلام باشی دی یاد را دار چونم نگهدار با تو رستم از مزاح. آقایان کجا می رفتن؟ آی بزرگ بسافر بیای بالا سوار شید تا بالا با آثار شید. آهای آهای بری کردم تا ها بطل بشی سوار. بایدی باشید بیاد قطع کرده با ماشینو بترد تختنده وشون رو رانده دور مزگار جدنه هاشانی باید بخوانده هاشانی باید بخوانده باور دزدی زدی چند فقط یه و فقط یه وای. خوب خوب اگر بود. باباش یه باش یه باش می رسونه یه باش یه باش می رسونه ترماتو دادو دنده حسنی چه خوبی خنده ترماتو دادو دنده حسنی چه خوبی خنده بسن نرمونه قمت گیریت نکو باما آی قپله گودار نیفتی بزن او زاپاس دور فربروز دودی بگرد دور فربروز دودی بگرد دور این کارچیا که ببینم دنده اسانی چطور میخندد تورم دو داده دنده اسانی چطور میخندد تورم دو گاده دنده اسانی چطور میخندد آینه کوپا کجا سران پیرمردی به نام پاک نهاد اونو برای تصاحب ملک پدرشون توی یک خانه سالمندان پنهان میکنند. میدونی آخه این خانم کی تازه اومده چرا با کسی حرف نمیزنه لا اقل برای کی می‌ره Batman تو این اوضاع خونی چیکارا؟ بضوریم هر چی خاص در اختیارش می‌ذاری سوالم نباشه آقای مودی بخباده من نگفتم من نگفتم که اونو بشنازم چرا؟ خودش گفت که بشنازه درش خدا من چی گناهی دارم لبود خسارت همه اینا رو باید من بگم چرا چرد و پرد میگی سرهنگ آقا واچیرنی سی تو؟ میدونی، مگه تو نداری تو؟ میدونی؟ از رفته یه جور بازی در بیاره <تصفيق> ها ها چجوری رفتی اونجا؟ لابد رفتی توی کانال کولر رو خلاب کنیم بیاندازی کردن منو الان میرم آقای مدیر سلام میکنم همه رو داشتی رپورت میدادی ها؟ ها؟ کجاست کجا؟ کولر، توی کولر. دستگاه بیشیم تو کولره؟ نه اون دیگه همون بچه بسر توی کولره؟ بچه یه مردم کردی تو کولر زنگ دل شما که میگفتی خانم بزرگ مسممه تا گردن بند معروف به آینه جادو رو به نوه ریحان ببخشه اما نیم تاج خانم دختر ترد شده خانم بزرگ و همچنین پسرش که نمیخوان این امر صورت بگیره با کمک دو سارق تصمیم به سرقت گردن بند میگیرن بند؟ یه صدای اومد؟ تلفون قطفتون <تصفيق> نه بابا عجب دا داستان شما فکر کنید من کنید خودم ساختم چه <تصفيق> اشکاری داره داستان به این خشنگی <تصفيق> هم مالیسی هم کومیدی عجب. بفروش اجب <تصفيق> بیل فیلمی بجه افتیم دونیم سمیمی اون موجراها و یه اول <مرنومن تصفيق> برنامه می خواهی باور با کنید می خواهی نکنید اما اونا امروز صبح به من زن کیا عروسکا نمی. حالا تکلیف ماچی ها برنامه اقعه به حروسکم نداریم شما بفرمایین ما کار کنیم آقای سمیمی مجده از کلام تری تلپون زدن مجده پیدا شده برنامه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> در خانه قدیمی امه زیرزمینی اسرارآمیز وجود داره برادرزاده امه جان از او میخواد که زیرزمین رو در اختیارش بذاره امه معتقده که زیرزمین پر از جادو و جنبله قافل از اینکه بچه دیوی به نام سمندون اونجا زندگی میکنه سمندون بچه دیو دو هزار سالهیه که توی اون زیرزمین منتظر مامانشه تا بیاد و اونو ببره باباشم توسط آدما دود شده و رفته هوا دارم. تو جه هستی من صاحب اینجا تو که هستی میگم کاری باید ندارم بیا بیرون داستان شنگول و منگول و حپه انگور رو همه یادشونه خانم معلم تصمیم میگیره در یک گردش تفریحی داستان رو برای شاگردان خردسال خودش تعریف کنه شیر در مقام سلطان جنگل بین گرد و روباه مسابقه ای می میذاره به ترتیب که هر کدوم زودتر قضای لذیذی برای او فراهم کنه به استخدامش در خواهد اومن گرد و روباه بچه های بزر رو میدوزدن بچه های خوب و عزیز من حالا به استخار شاکر در بلای کچوله خودمون یه می هورا میگیشیم هورا دو پسر بازیگوش به نام‌های السون و ولسون در کلبه کوچیکی زندگی می‌کردند. یکی از اونا عاقلتر از دیگری بود. در همسایگی اونا دو کبوتر برای خودشون لانه درست کرده بودند و از اون بالا زندگی روزمره السون و ولسون رو تماشا می‌کردند و گاهی هم نگران این دو برادر می‌شدند. چون یک شخصیت دیگه به نام دوندون وجود داشت که با هر نقشه ای سعی می کرد علسون و ولسون رو گول بزنه و شکلات و شیرینی زیادی به اونا بده تا دندونهاشون خراب بشه. kita khidum kushkoli ale suda guli zadala ale suda guli zadala tosta de zadula usala tosta de zadula usala tiga keri ale suda i شکلات با مردم ها با خوریم نه نه خوریم بول می خوریم حاله صدا وله صدا پسه دارم برای تو گردو و پدو دارم با تو به بچه ها جو با تو به بچه ها جو بیا با بگیرش اگه با بگیرش از باد با دردورات زود بشکر بشکر من نمیشکرم بشکر من نمیشکرم نمیشکرم چی بود چی بود چیشه شکرم چیشه نبود پس چیشه کرم بازی جک هالبورن در نقش سیلاس و اون اسب سیاهش به اسم طوفان واقعا بین این سریال فقط با شش قسمت رننگ عجیبی در قلب و ذهن بچه های اون موقع کرده. به طوری که شنیدن موسیقی تیتراژش اشک رو از چشمان خیلی درمیاره در میاره. شک خاطر انگیزترین سریال های خارجی که از تلویزیون ما پخش می شد سریال های کانادایی بود مخاطبان و طرفداران پراپاگرس تلویزیون قطعا سریال شمال 60 درجه که یکی از معروفترین سریال های اون دوران بود رو فراموش نکردند. شمال 60 درجه روایتی از زندگی پرماجرای سرخپوستان کانادایی بود و داستان جالبی داشت مجموعه بسوی جنوب یک سریال جنایی بود که عناصر کمدی هم در به کار رفته بود. از ستارگان این سریال میتونم از پول گراس و دیوید مارچیانو نام ببرم. Look up at the clouds and you can see which way. قصه جزیره هم یک سریال پربیننده و مشهور به شمار می رفت که به زندگی خانواده ی کینگ در اوایل قرن بیستم می پرداخت. پزشک دهکده یک سریال آمریکایی با سبک وسترن درام و خانوادگی بود ماجرای اصلی این سریال مربوط به پزشک زنی با نام مایکلا کوین بود که نقش اونو جین سیمور بازی میکرد مایکلا پس از گرفتن تحصیلات پزشکی در بوستون به ای در کلورادو میره و در اونجا به معالجه بیماران میپردازه در همین حین با خانوادهی سمیمی میشه پس از مدتی مادر اون خانواده بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار میگیره و در اواخر عمرش سفرزندش رو به مایکلا میسپره تا از اونا مراقبت کنه. شهر مرزی هم یکی دیگه از اون سریال‌های دیدنی و جذاب بود که هممون باهاش خاطره داریم